اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی نبینا و عالیه خدمت از دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر میکنیم الله که از نیوت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و الله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به باشید تاعت و عبادات شما هم مقبول درگاه الهی باشد انشاءالله و خب آمند بهترین تقدیرات رو براتون داشته باشد امروز رو که میلاده کریم اهل بیت مام حسن مشتبه و علیه آلاف و تهییت و رستان آهاز خدمت شما تبریک از ما در قصیده که با هم میخوندیم به بیت یازده هم رسیدیم که در رابطه با قلعه حدس که در مرز روم بود و آقای سیف الدوله این قلعه را از اونها پس گرفت و بعد اون رو باز سازی کرد و به مسلمین باز گردود فاتحانه اونجا رو پس گرفت و کشته رومیان را رو هم بر ساختمان این قلعه آویزان کرده بود که اشاره به این مطالب کرد حالا می فرماید تریدت و دهر ساقه ها فرددت ها علد دین بلخطی و دهر و و دهر و راق ترید به معنای مفعوله فعیل گاهی اوقات به معنای فائله مثل سمید علیم معنای سامه و عالم داره گاهی اوقات به معنای مفعوله مثل جریه قتیل به معنای مجروح مقتول ترید یعنی دنبال شده تریده معنسشه درست شد ترید به شکار هم میگن چون او رو دنبال میکنه چون قلعه معنسه ایشون گفته تریده تو تریدت و دهرم یعنی هیه تریدت و دهرم خبر مقتدای محزوفه یعنی هیه او قلعه مترودت و دهرم دهر روزگار مادر همه بلاهاست شکارچی قهار آلم میگه این قلعه شکار تحت تعریب روزگار بود تریدت و ساقها ساقه ها فرددت ها. ساقه ها یعنی روزگار اونو دنبال می کرد. تریدت و دهرن روزگارونو ها دنبال میکرد روزگار اونو میکرد یعنی این قلعه مثل یک شکاری بود در مقابل روزگار در و روزگار او رو تعقیب میکرد ساخه یسوعو یعنی میراندش او یعنی او را دنبال میکرد فردد تها پس تو پس گرفتی این قلعه رو فردد تها پس گرفتی اینو برش کردوندی این قلعه به مسلمانان این گفته یعنی به مسلمانان برگردوندی به دین برگردوندی یعنی به مسلمان با چی برگردوندی به مسلمانان بل الخطی با نیزه ها. با خطی یعنی نیزه با نیزه های نشگریان خودت به خطی و دهر و راغمو و روزگار به قول خودمون دماغ سوخته موند روزگار حسرتمند موند و نتونست به خواسته خودش برسه راقم یعنی زلیل یعنی خار اصل کلمه راقم از رقم رقم رقام یعنی خاک راقم یعنی به کسی میگن که دماغش به خاک رسیده به صورت افتاده روی زمین و دماغش به خاک رسیده اینوش میگن راقم یعنی التسق انفهو به رقام التسما تسقه چسبید انفه انفهو بینیش به رغم من لغات رو معنا کنم که دیگه ببینید تریدت و دهرم یعنی چی خبر مفتدای محضور تریده گفتیم یعنی شکار اون شکاری که دنبال میکنند و تحت تریده اش میگن تریده شکار روزگار بود این ساقه ها ساقها ساقها ساق داریم و قاده سائق داریم و قائد ساق موقعی که شما یه چیزی رو بندازی جلو و از پشت هدایتش کنی و ببری حتی به راننده میگن سائق در درون میشه و هدایت میکنه ایلون. بعد موقعی که شما بری اونو به خودت بکشی بیاری لذا به رهبر رهبران میگن قائد چرا چون اونها پشتازن جلو میرن و امت رو مردمانشون رو به دنبال خودشون میکشن رهبری میکنن قم این الان تو این تیکهی که تریدت و دهرن ساقه ها خیلی قشنگ میگه میگه این قلعه شکار روزگار شده بود ساقه ها روزگار اون شکار کرده بود انداخته بود جلودش میگرد یعنی از دست مسلمان ها در اومده بود افتاده بود دست رومی ها و اونها این رو اداره میکردند ساغه فردد تها تو این قلعه را از اونها پس گرفتی برگردوندی این قلعه را برگردوندی به چی؟ علال دین یعنی علال خلافت علال اسلامیت برگردوندی علال دولت عل اسلامیت، دوباره اینو برگردوندی به دین اسلام یعنی اونها مسیحی بودن اینو گرفته بودن اداره می کردن. شما اومدی اینو پس گرفتی برش گردوندی به دولت اسلام. خوب با چی برگردوندی با چی پس گرفتی اون به متعلق به ردتماس ملختی یعنی به رما با نیزه ها. یعنی به زور و غلبه اینا گرفتی از اونها و دهرو راقمو و, و حالا که روزگار ذلیل بود هیچ غلطی نتونست در مقابل این هنر و شجاعت تو انجام بده تو اینو از دست اونها در به اسلام برگردوندی و روزگار هم هیچ غلطی نتونست بکنه و تسلیم تو شد درست شو؟ خب تریدت و دهر ساقه ها. یعنی یه تریدت و دهر ساقه ها صفت تریدست این قلعه شکار روزگار شده بود و این شکار رو ساقه ها. روزگار همینطور با خودش می برد فرعدت تا پس تو اونو پس گرفتی برگردوندی این قلعه رو خامی خوره به قلعه فرعدت تا فعل و فایل مفعول و دین اسلام به مسلمین برگردونی خطی یعنی بر ماه یعنی با نیزه های خودت و دهرو راقموی با با با است و حالا که روزگار هم داشتش حسرت میکرد. روزگار هم به قول خودمون دماغ سوخته شده بود، سلیل شده بود در مقابل تو کاری نتوانسته بود انجام. این دیگه چیزی نداره که شما بخواهی داشته تریدت و دهرین حالا ما ساقه ها رو گفتیم صفت تریده بگیرید و میشه هم خبر دوم اون هیه مقدر گرفت یعنی هیه تریدت و دهرین این شکار روزگار بود ساقها این غلعه رو روزگار گرفته بود و هی می بود داش داشت می بود مثل شکار چیگی که شکاری گرفته و او رو بند بسته و انداخته جلو رو داره میبره. بود روزگار دارش میکرد تو پس گرفتی این قلعه رو برش گردوندی به مسلمانان به دولت اسلامی با نیزه های خودت بلخطیه و دهرو راقمو و حالا که بل آه اون تا مشدد بلخطیه با خطیه یعنی نیزها ها بلرماه خب بلخطی از رماه بریم سر بعدی دیگه چی که قرار بود بدانیم دانستیم ساقه ها رو خبر دوم هم بگیریم خوب است یعنی هیه تریدت و دهره این قلعه شکار روزگار شده بود ساقه ها. این قلعه رو روزگار انداخته بود و جلو میبرد یا این شکار رو روزگار میبرد پس تو برگردوندی اون رو به مسلمانان با نیزه خودت بالخدیه یعنی به رماهک رماه جمع رمه یعنی با نیزه‌های خودت منظور یعنی با لشکریان خودت که نیزه داران خودت بودن و دهر راغ و حالا که روزگار هم دست خالی مونده بود و زلیل آ در مقابل تو هیچ کاری نتونست بود رماه جمع رمح. خط یعنی نیزه ها منظور از اینکه با نیزه های خودت برگردوندی چون الفلام بلخطی عوض از مضافنه لیه یعنی بلخطیه یعنی به خطیک با نیزه های خودت یعنی به رماهک خب اینکه گفته با نیزه های خودت مگه چند تا نیزه داشته منظور یعنی با نیزه داران خودت آه با لشکریان خودت اونها رو شکست دادی غلعه رو پس گرفتی به مسلمانان برگردوندی و روزگار هم هیچ کاری نتوانست خب تمام توفیت الیالی کل شیء اخذ ترتیب و هن نل ما یاخرن منک قواریمون این در واقع بیت قبل رو تکمیل میکنه توفی تو از فوته از ماده فوت که ما تو فارسی استفاده می از دست رفتم عفات هو اشیع مثل اینکه که من بگم افات زیدن امرا مالهو عفات زیدن امرا مالهو دو مفعولیه عفات یفیتو عفات هو اشیعه یعنی او رو وادار کرد به اینکه از دست بده مجبور کرد به اینکه اونو از دست بده مجبور به فوت اون چیز کرد الان پس بنابراین ترجمه عفات زیدون امرن ماله چی میشه عفات زیدون امرن ماله ترجمه زید امرا مجبور کرد مالش از دست بده افات زیدن امرن ماله یعنی او رو وادار کرد که از خیر مال خودش بگذره مالش از دست بده معلوم شد دارتون افات زیدن امرن ماله یعنی زید امر رو مجبور کرد که مال خودش از دست بده درست شد یعنی از خیر مالش بگذره نتونه مالش رو نگه داره آه. توفی تو یه زمیر انته توشه این سیغه هفتمه یعنی تفیتو تو انته اللیالی مفعولشه مفعول اول باید بشه به باب ضرورت شعر نصبش ظاهر نشده توفیت و لیالی میخونیم بلید باید بخونیم توفیت و لیالی خب شیء مفعول دومه لیالی یعنی همون روزگار م? اللیالی یعنی این شب و روز منظور یعنی روزگار. کل اخذ اخذتهو صفت شید جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفت اه. اون نکره الان فکر میکنم این مصران رو معنی کنی نیده تو وادار میکنی روزگار را به این که هر چیزی که تو گرفته رو از دست بده اغازتا هر چیزی که تو گرفتهی وادار میکنی روزگار از خیرش بگذره، اون از دست بده یعنی چی؟ یعنی روزگار اگر دیگران چیزی ازش بگیرند حمله میکنه پس میگیره الا تو تو هر چیزی از روزگار گرفتی روزگار رو مجبور میکنی که اون رو از دست بده او رو مجبور به فوت اون میکنی یعنی باید از خیرش بگذره روزگار زورش به تو نمیرسه که اگر تو چیزی از روزگار گرفتی روزگار بتونه اونو دوباره از چنگ تو در بیاره توفیت و لیالی. یعنی ال کل شیء این و هنه و حالان که این بابا با و هنه قوارمون لما یعخوز نمین و حالان که روزگار قوارمه قرامت میکشه یعنی تاوان پس بیده. روزگار تاوان پس دهنده است لما یعخوز یعنی لما یعخوز نهو منی کرد نسبت به اون چه که بگو از تو گرفته و این لیالی هنه قوارم تاوان پستهندگانند لما آنچرا یعخوز نگرفتند او را از تو میگه اگر روزگار مثل این قلعه که آمد از تو چیزی رو گرفت باید پس بده تو پس میگیری از روزگار اگر روزگار چیزی از دست به تو بگیره اما اگر تو از دست روزگار چیزی رو درآوردی بردی روزگار قادر به دست آوردن اون دیگر نیست مجبور از خیرش بگذاری و خونده قوارمون آنها قوارمند اون روزگار قوارمه یعنی قرامت دهنده است قوارم جمع قارم است درست شد قرم الدینه قرم الدینه یعنی عداهو قرم الدینه یعنی عداهو دینو پس داد درست شد قوارم جمع قارم قارمه یعنی قرامت دهنده یعنی پس دهنده چون قرم نه ها مثلا میگم قرم تو دینه یعنی چی یعنی عددی تو دینه قرض تو رو پس داد خب این لام لما بهش میگن لام تقویت زائد است اون ما مفعول قوارمه درست شو؟ نظام میشه و نه و حالان که این روزگاران میخوره به لیادی قرامت دهندگان هستند آن چرا ما یعخذنه نه میگیرند او را این آید سلو افتاده یعنی یعخوز نه میگیرند اون را از تو و حالاً که اونها قرابت دهندگان هستند آنچهرا که میگیرند اون را از تو یعنی اونها اگر یه چیزی از تو بگیرند مثل این قلعه که آمدند حمله کردند و از دست مسلمونها درآوردند مجبورند پرداختش کنند پسش بدن مجبورند قرامتشو بکشند اما اگر تو از اونها چیزی پس گرفتی مثل اینکه امروز این قلعه رو از اونها گرفتی اونها دیگه هیچ وقت نمیتونند این رو پس بگیرن، مجبورند از خیرش بگذرن. توفی تو لیالی یعنی اللیالی کلشه این اخذتهو و هن لما یعخذ نمینی که قبارمون هن نمبتداست قبارم خبرش. اون ما به معنای الازیه اون لام هم بهش میگن لام تقویت چون مفعول قواره مبدم شده این لام رو برای تقویتش میاره. درست شد؟ اصلا مفعول اسم فائل سیغه مبالغه گاهی اوقات با لام میاد به اسم لام تقویت مثل فعال و فعال از فائل فائل متعدیه و آلون لمایوریت ترجمهش میشه بسیار انجام دهنده از خدا آنچه را که اراده میکند آن را این لام دیگه ترجمه نمیشه شو؟ خب این هم بیتی بود که ما دیدیم و خیلی با قول خودمون قشنگ بود و زیبا بیت بعدی رو نگاه کنید و کیفه و کیفه ترج رومو و روس و خدمها و زد تعن و لها و دعائم, دعائم جمع دعامه است دعائم جمع دعامه یعنی ستون ستون خانه که صفو بهش سوار میکنن این ستون رو میگن دعامه جمعش میشه دعائم آساسم که جمع اساسه درست شد لغاتش رو ببینم چیزی داره رجا یعنی امیدوار شد رجا باب تفعیلشه یعنی خیلی امیدوار شد رجا تو که یعنی به تو امید دارم رجای تو که یعنی خیلی بهت امید دارم چون باب تفعیل یکی از معانیش خوندید اتمن برای مبالغه است درست پس اساس جمع اسه جمع اسه و اص یعنی اساس حالا من گفتم اساس جمع اساسه در معنا گفتم جمع اساسه یعنی اساس این مطلب اینه یعنی پایش اس اص و اساس به یک معناه است ولی اساس جمع اسه فعل جمعش میشه افعال درست چون جمع اس اس یعنی چی یعنی اساس خب اون اساس بود که گفتن اونم معنای اسه اون جمعش میشه چی اسس از نظر لغوی مالا دیگه بعد بدونید دیگه به و اساس میگن اس و اساس این مطلب این تو تا مترادفند ادر تفصیلی اس جمعش میشه اساس اساس جمعش میشه چی اسس این لغات رو جمعشون رو بدونید که بتونید کلمات رو داشته باشید دعای من که جمع دعامه گفتم هست که ستون خون است درست خب. میگه و کیف و ترجی معناه و کیف و ترجی ار میگه چگونه امیدوار شدند رومیان و روس و روس تایفهی که اونجا بودند این روم و روس چگونه امیدوار شدنده حد مها نابود کردن این قلعه رو. اونا چجوری امیدوار بودن که این از دست مسلمان ها دره و دیگه از دست مسلمان ها حدم یعنی خراب شدن نابود شدن حدمهو یعنی منحده ما فکار میبریم حدمهو یعنی خرابش کرد این حدمه یعنی خراب شد منحده یعنی خراب میگه اینها چجوری پیش خودشون دلخوش خوش کرده بودند امیدوار شده بودند که این قلعه رو از بین میبرند درست این وفا و حالی است و حالان که زد تعلو. زا اینجا یعنی هازا این های حرف تنبیش نعیم ده از تعن و بیانش یعنی نیزه زدند و حالان که این نیزه های تو یعنی این جنگیدن تو اصا آساسون لها و دعائم یعنی و دعائم و لها و حالان که نیزه های تو پایه های این کاخه پایه ها هست برای این کاخ و ستونها یعنی نیزه زدن و جنگیدن تو پایه و اساس این کاخه این کاخ رو میسازه اینا چجوری پیش خوش خوش خیالا نشسته بودن گفتن ما اینو به دست میاریم درست یعنی تو پایه و اساس این کاخ رو با چی ساختی؟ با نیزه زدن ها و جنگیدن ها این کاخ پایه و اساسش بر روی جنگیدن سیف و دوله بنا شده بر روی شجاعت سیف و دوله بنا شده اینا چجوری امیدوار بودن که میتونن این از دست مسلمان ها در بیارن و خرابش کنن انشاءالله فهمیدید کیفت ترج روما و روس و حدمه و زدتن و ایوابا است و حالان این جنگاوری تو این نیزه زدنهای تو آساس اون ده ها برای این قلعه و دعایمو و است یعنی اونها خیلی خوشخیال بودند که فکر کردن این از دست مسلمان ها دره و نابودش کردن نه اینا نیزه های تو و جنگاوری تو به منزله پایه و اساسشه و این رو دوباره بنا میکنه و میسازه قشنگه و کیفه ترج روم و روس و ها روم و روس فائل ترجیست این کیفه حال است از برای روم و روس محلم نزد ها و زد تعنو مبتداست اون زد تعنو بیانشه آساسون خبره لها صفت پایه است برای این کاخ برای این قلعه و دعائم دعائم جمعه دعامه عطف به جای آساس خب این بهتره فهمیدیم لغات عبارات یعنی خیلی خوش خیال بودن فکر کردن این از مسلمان ها گرفتن و دیگه با قول خودم از دست مسلمان ها میرانش کردن نه مسلمان ها میان اونو با زدن زدنهای خودشون جنگ آوری خودشون از ناو میسازنش وقد ها ولمنا یا حواکمون و ما مات مظلوم مظلومون ولا آشر ظالمون خیلی اینجا تصویر قشنگی داده درست شد یعنی حاکموها واقع میخوره به روم و شد او میخوره به قلعه لقد من منایا جمع منیه است جمع منیه است یعنی مجلث شد وقت حاکموها یعنی به محاکمه بردند این رومیان این قلعه و المنا یا هواکمو و مرگ قاضی این میدان بود درست هواکم جمع حاکم است. و مرگ قاضی این میدان بود چی شد؟ نتیجه چی شد؟ فما مات مظلومون مظلوم نمرد، مظلوم کی بود؟ قلعه ولا آش ظالمون ظالم هم زنده نموند کی بود؟ رومیان یعنی میگه حال داره تصمیح. نه که اونها به محاجر. میگه اونها با این کاری که کردند آن این قلعه رو به محاکمه کشیدند و قاضی میدان مرگ بود یعنی چی؟ یعنی اونا میخواستن این قلعه رو بگید از بین ببرند خراب کنند مرگ رو قاضی گرفتند که حکم کند این رو از بین ببرند این قلعه رو خرابش کنند قلعه مسلمان هارا اما قاضی حکم عادلانه دار مظلوم رو که اینها به محاکمه کشیده بودند نجات داد نمرد و ظالم رو که اونها بودند و این رو آورده بودند به محاکمه حکم مرگشون رو داد و شکست خورد. مظلوم اینجا قلعه است چی میگن؟ میگن سر بیگناه تا پای دار میره ولی بالای دار نمیره این همینه میگه این ظالمها این آوردن به محاکمه کشیدن این قلعه رو و مرگ رو هم قاضی این دادگاه کردن که مرگ حکم کند این قلعه رو از بین ببرند آه. یعنی قصد اونها این بود که این قلعه رو خراب کنند از بین ببرند از دست مسلمان ها در آرند. ولی مرگ حکمش اینجا عادلانه شد این قاضی که اونا گذاشته بودند، حکمش عادلانه شد آمد حکم کرد که قلعه بماند به دست سیف الدوله و اونها شکست بخورند و از بین بروند به دست سیف الدوله. زیبا بود و قد حاکموها ولمنا یا هواکمون و ما مات مظلومون ولا آش ظالمون بینه ماته و آشه تباقه بین مظلوم و ظالم تباقه اینها کلمات زیبایی است که شما تو این بیت میتونید ببینید پس این که میگه که و قد ها و به تحقیق قد حاکموها ها اونها به محاکمه کشیدند این قلعه رو و یا حواکمو و حالا مرگ هم بازی دادگاه بود حاکم بود و المنایا جمع منیه حواکم جمع حاکمه فما ماتر پس نتیجه این محاکمه چی شد این شد فما ماتر مظلومون ولا آشن ظالمان، پس مظلوم زنده نماند و ظالم هم که مظلوم نمرد و ظالم هم بگید زنده نماند خوب این هم بسیار زیبا بیان کرد و اید. حالا اینجا یک بحثی رو داره بیان میکنه که اینکه لشکر رومیان که شکست خوردن از سیف و دوله یه لشکر به داغون پیزوری نبودن اینکه که مثلا حالا سیف و دوله اینا رو شکست داد نمیدونم فرض کن رو از دست اینها گرفت اینها دین رو پس دادند درست شو که تعبیرم هم کرد از این که اونها ظالم بودن میگه اینها لشکرشون خیلی فبی بود پر از سلاح و اسلحه و اسب و نیرو بودند این سیف و دوله بود که قدرتمند اینها رو سر جاشون نشوند شما هرچقدر دشمن خودتون رو تقویت کنید توی گفتار یعنی بگید این قدرت اون رو نشون بدید بعد بگید که ما این قدرتمند رو شکست دادیم خب شجاعت شما کارآمدی شما بیشتر دیده میشه الان داره همین کار میخواد بکنه مخواد بگه این لشکر روم یه لشگر ساده، یه به قول خودمون یه مش آدم غیر مجرب بی سلاح نبودند بلکه کارازموده های میدان جنگ بودند هر کدومشون برا خودشون کسی بودند اگر سیف و اونها رو شکست داد چون دست برتر رو داشت اینو توجه داشته باشید که میخواد این رو میگه اتاو چه یجرون الحدید که انما سر به جیاد ما لهن قوائمو اتاو چه یعنی آمدند این رومیان و روسیان اینها آمدند پیش تو به جنگ تو اتاوک همین خب معلوم فعل و فاعل و مفهول. اومدن مقابل تو رومیان یجرون الحدید فعل و فاعل و مفهول. این جمله حال است از برای واقع اتاوک در حالی که میکشیدند کشیدند آهنالات آهن رو الحدید یعنی تمام آهنالات رو اینها میکشیدن و می آورد. یعنی چی یعنی یک لشکر مکانیزه بودند نیزه شمشیر خنجر کلاهخود زره سپر همه از طلا همه از آهنالات محکم اینها یک لشگر کاملا مکانیزه به جنگ تو اومدن اتاو که یجرون الحدید این هر حدید منظور یعنی الاصله تعبیر کرده آن آهنالات را الحدید اون آهنالات را میکشیدند و آمدند سراغ تو یعنی کاملا زرهی بودند که گویا امام مای کافه است که عمل نمیکنه دیگه چن نما میشه گویا سراو سرا یسری یعنی شب حرکت کرد شب اینجا منظور یعنی حرکت کردن چن سر سراو یعنی عتو گویا حرکت کردند به جیادن با اسبانی جیاد جمع جواده جواد هم به معنای بخشنده است هم به معنای اسب خیلی خوب درجه یک. درستو جمع جوادی که به معنای بخشنده است میشه اجواد عجواد العرب جمع جوادی که به معنای اسب خوبه میشه جیاد جیاد العرب یعنی اسبان درجه یک عربی درست سر او به جیاد یا اینها حرکت کرده بودند آمده بودند با اسبانی اسبان خیلی خوبی که این صفت داشتن اسبها ما لهون نقوائم و حالا که اینها با اسبانی آمده بودند که ما لهون نقوائم که برای اون اسبها دوائم نبود دوائم قسمت پایین پارو رو میگن تا زیر زانو اون از قسمت سوم تا پایین زانو اون رو میگن چی؟ دوائم پس جیاد جمع جواد یعنی از خوب چرا گفته که اینها حرکت کردند آمدند درست شد با اسبانی که گویا سم نداشتند یعنی قسمت پایین پا رو نداشتند این به این دلیله مردان جنگی قدیم خودشون که زره می پوشیدند و زره و کلاخود و غیره و این زره ها گای اوقات بلند بود بافته شده از حلقه های آهند تا مچ پا یعنی حسابی اینها رو می پوشون مثل پالتوی بلندی که به تنگ کرده باشند و بسته باشن کمرش رو اینطوری که اصله در اونها سلاح دشمن نیزه و شمشیر و تیر تأثیر نکنه اسبان اونها هم خیلی خیلی براشون مهم بود لذا اسبانشون رو هم زره می پشندن. یعنی اسبان رو اون قسمت صورت گردن و اینها رو نکشن و مخصوصا روی خود بدن اسب یک چیزی مثل پتو پهن میکردند و از این طرف و اون طرف حالتی کشیده که این تا پایین پای اسب رو میگرفت که اسب رو نتوانند پی بزنند پای اسب رو بزنند چون عصف تمام سرمایه اون رزمنده بود این میگه اینها آمدند با اسبانی که گویا بگید اینها پا نداشتند یعنی چی کنایه از این که این عصف ها در زره بودند جوری که پای اونها دیده نمیشد پای اونها دیده نمیشد مشخص شد مثل مثلا فرض بفرمایید که یه آقایی که مثلا دیشداشه پوشیده خود شما حرکت که میکنه پای او رو نمیبینید چرا چون تا روی پا این دیشداشهٔ او هست میگه این اصفا زره پوشیده بودن مثل این دیشتاشه ها بلند از خلقه بافته شده یا آهنی اونها سوار این اصفا بودن این اصفا حرکت می‌کردند. میامدن جوری که شما انگار احساس می‌کردی پا ندارن دارن همینطوری خودشون میاد پای اونها دیده نمیش. فکر میکنم انشالله متوجه شدید که چگونه شد اتو که یه الحدید آمدند به پیشگاه تو به جنگ تو در حالی که می آهن آهنالات یعنی همش آهن بود سوار آهن چرا چون کلاخود آهنی زره آهنی شمشیر آهنی سپر آهن خنجر آهن سوار همش آهن اسب هم غرق در آهن چرا؟ چون زره بلند آهنی تا پایین پاشون کرده بودند چند نماگویا حرکت کردند آمدند با اسبانی که این صفت دارند ما لهون نقوائیم که اون اسبها اصلا گویا پا نداشتند درست شد؟ توی نیوان خود متنبی به جای که انما که نوشته شده هیچ فرقی نمی کنه که انما باشه اون ما میشه مای کافه که باشه اون هم میشه اسم که انه میشه چی؟ جمله خبر. هیچ فرقی هم از لحاظ معنا نمید درست شد گویا که انم میشه گویا گویا اینها حرکت کرده بودند آمده بودند و در سلاح بودن جوری که پای از هم دیگه دیده نمی شد خب این به تو هم فهمیدیم حالا نگاه کنی رزمندگان رزماندگان قدیم ها می گفتن این رزمندگان وقتی که در روز جنگ می کنن برق شمشیر اونها دیده میشه برق شمشیر اینو خیلی شنیدید برق شمشیر یعنی درخشش شمشیر در نور آفتاب برق شمشیر میگه لشکر روم برق شمشیر نداشت فقط. بلکه لشکر روم همه چیزش برق میزد چون توی بیت غب گفت دیگه گفت سواری که بر اسب سوار شده همش آهنه کلاخودش آهن زرهش آهن شمشیرش آهن سفرش آهن نیزش آهن همه برق میزنه عصبی هم که سوار شده اونم غرق در آهنه چرا چون زرهی که به اون اسب تنگ کردند، این اسب رو هم در آهنالات پوشندن در زره آهنی میگه پس برخلاف دیگران که شمشیرشون برق میزنه تو میدان جنگ اینها همه چیزشون برق می حالا گوش کنید ازا برقو برقو واقعیه لشگر روم زمانی که بدرخشند برق بزنند لشکر روم لم تو البیز لبیز و من همون البیز جمع ابیز یعنی سیف لم تعرف البیزو هم شناخته نمیشه لم لمتعرف جواب ازاس شناخته نمیشه شمشیرها از اونها یعنی وقتی خودشون برق میزنند کلاخودشون زرهشون سفرشون اسبشون برق میزنه سیغلها شده این آهنالات سیغلی به تن اونها وقتی برق میزنن برق شمشیرشون دیده نمیشه میداره مقالقه نگه ازا برقو نم تو عرف البیز و من مثلها سیاب و هم من ول ها ول هست ها ها میخوره به البیز چرا چرا وقتی که خود اینها برق میزنن دیگه برق شمشیرشون دیده نمیشه میگه زیرا این سیاب و هم که عطفه به جای سیاب هم هستش منمثله ها این منمثله ها خبره یعنی سیاب و ول یعنی و امائم و هم الفلام از مضافه میده منمثله ها یعنی من مثل الویز. زیرا لباس های این ها و امامه اینها از جنس بگیت شمشیر اینجا منظور از لباس ها و امامه ها از جنس شمشیر خب لباس و امامه از جنس شمشیر باشه میشه چی میشه زره ها کلا میگه زیرا ها و کلا ها, ها هم از جنسه بگو شمشیرهاشون بود آهنهای براق لذا اینقدر زره اونها و اینقدر کلاخودهای اونها براق بود و برق میزد که برق شمشیرها دیگه دیده قشنگ بود برق یعنی لمعان یعنی درخشش یعنی می درخشیدند اینها در زیر نور آفتابین کرد. جوری که دیگه شمشیرهاشون دیده نمیشد شناخته نمی شود. شمشیرها از اونها شناخته نمی شدد. لم یا اوفل و من هم شمشیرها از اونها تشخیص داده نمی شود. این سیاب ها استاف و زیرا چرا شمشیرها دیگه از اونها تشخیص داده نمیشد که این برق شمشیره یا برق چیز دیگه؟ میگه به دلیل اینکه لباس‌های لباس های اونها و امامه های اونها از جنس شمشیرها بود مثل همون شمشیرها از جنس آهن بود. خیلی مبالغه کرد ولی امائم یعنی و امائم و هم به خاطر قافیه الفلام را ورده جای زمین ازا برقو لم تو آرفل بیز و من همو سیاه و هم من مثله ها و الاما امو بایین چند قشنگو بیت بعد به شرق نعرزه ولگر به زحفهو فی اوزانه جوزائمن ها زمازم زمازم جمع زمزم است زمزمه رو ما تو فارسی هم به کار میبریم یعنی سر و صدا. درست شو؟ اصلش رعد و برق و آسمون رو میگفتن زمزمه ولی زمزمه یعنی سر و صدا و درست شد زحف زحف یعنی خودش رو زمین کشید و رفت خیز رفت چون لشکر خیلی سقیل بوده و آهنالاتی بوده انگار که مثل تانک که خودش رو می می اینجوری می رفت یعنی کند و کشام, کشام. حرکت سنگین آه. روی زمین رو سینخیز این زحف و یزحف و برای ما رو همجور چیزها به کار میره یا ای میکشن اینطوری میگه اینها اینطوری روی زمین حرکت میگه زمزمرم که عرض کردم سر و صدا و اصلش هم گفتم برای لعدوبر قاسمون به کار میره میگه که خمیسون، خمیس یعنی لشکر جش سمیس یعنی لشکر جش چون از پنج قسمت تشکیل شده بهش گفتن خمیز پنج گانه چون یک قسمتش طلیعه لشکر میشن جلو میرن اطلاعاتی و اطلاعاتیا و می جلو میرن که لشکر شبیخون نخوره بعد سه تا قسمت لشکر پشتشه که میمنه و میسره و قلب لشکر بعد پشت این یه قسمت دیگریست به اسم عقبه لشکر که تدارکات کارهای مختلف خدماتی لشکر رو انجام میده این بیمارها رو درست میکنه اسب رو تیمار میکنه شمشیرها و سلاحها رو تعمیر میکنه غذا تعمین میکنه ها این پنج یه قسمت جلو که بهش میگن تلیعه لشکر پیشقرابولان بعد سه قسمت اصلی خود بدنه لشکر میمله و میسره و قلب لشکر که فرمانده تو قلب لشکر و بعد یه قسمت هم انتهای لشکر پشت میاد جوشکن عقبه لشکر ها یعنی تدار به همین دلیل بهش گفتن خمیس خمیسون به شرق الاعز و لگارب زحفو هو. یعنی هو و خمیسون. هو و خبر مبتلاي مخصوص. یعنی لشکر نو لشکر است که این صفات داره. به شرق الاعز و یعنی و گرب الاعز. علاوهال از مزاحمیله. زحفهم یعنی حرکت او به شرق العرض خبر مقدم زحفهم مبتدا مؤخر این جمله صفت خمیز حالا ترجمه کنید باحت حد لشکر روم لشکری بود که در شرق این سرزمین و در غرب این سرزمین حرکتش بود. من یعنی شرق و غرب و رو گرفته بود و می왔. از شرق تا غرب رو پر کرده بود این لشکر. لشگری بود. حالا قبلش داشتش مکانیزه و این جور بگو الان داره کثرتشونو میگه. میگه انقدر زیاد بودن تا چه چه کار میکرد؟ از شرق تا غرب این لشکر ادامه داشت. خمیسون به شرق و و الغرب زم وفی فی او, او جوزا ستاره جوزا که در آسمان هستش آه میگه در گوش ستاره جوزا منحو از این لشکر زمازمون زمزمه های صدای این زمزمه و همهمه و تا این لشکر گوش جوزا رو کر کرده. صدای اینها آسمان رو برداشته بود و گوش جوزا ستاره جوزا را سر و صدای اینها پر کرده بود وفی اوزانل جوزا منحو زمازمه این وفی اوزانل جوزا خبر مقدم درست شد زمازه مفتدای محرفت این جمله اطفع از بجای اون جمله به شرق لحظ پس این لشکری بود که این دوتا صفت رو داشت یک شرق و غرب و عالم رو حرکتش بار کرده بود یعنی کسیات چونی طوری بود تصویرش این بود که شرق تا قرد بود و این لشکر یه خصوصیت دیگه هم داشت این که صدا و همهمه اون گوش ستاره جوزا رو هم پر کرده به گوش ستاره جوزا هم صدای اون رسیده بود این صدای اون به گوش ستاره جوزا رسیده بود خب دیگه فکر نمی کنم ما مشکلی در این داشته باشیم فهمیدیم که چی میکرد گفتیم که زمازم جمع زمزم است یعنی هم همه صداهای بلندی که تو در تو باشه و نشه به بهش میگن زمزم صدای رعد و برق رو هم میگن زمزم خب هم کسرتشون رو گفت هم بگید سر و صداشون رو که این لشکر لشکر خیلی خیلی برزه گفتن چرا بین ستاره های آسمانی ستاره جوزا رو گفته گفتن چون ستاره جوزا حالا آره ما که ستاره شناس نیستیم ولی اینطور تعبیر کردن که متنبی هنرمند بوده چون ستاره جوزا به شکل انسانه چون میخواستم بگه به گوش ستاره جوزا رسید نگهتم مثلا ستاره فرض کنی زهر. چون ستاره جوزا رو اون ستاره مجموعه اون ستاره رو به شکل انسان تعبیر ازش میکنن لذا ستاره جوزا را آورده که شکل انسان واقعا میگن که بعضیا که خیلی چیز دارن مثلا فردوسی و حماسه سرایی خیلی خاصی البته نمیشه قیاسش کرد در حماسه سرایی با این شعر های های متنبی ولی تو عربی گفتن که این شعرهایی که اینجا در وصف لشکر گفته و لشکر رو داشته توصیف میکرد اونم لشکر دشمن واقعا مثل این توصیف برای نشکر خیلی خیلی کم شده و دیده نشده یعنی خیلی جای خود شده خب اینها دور بودند از بقول خودمون شعرهای فردوسی اگر ذوق داشتند و فارسی بلد بودند و می و میآمدن آمدن هماسخانی می کردند و شعرهای شاه دیگه از این حرفا نمی تجم تجمع و کل و لسم و امت و ما توفحه ما الهداسه علت تراجم و ما توفحه ما الهداسه علت تراجم خیلی قشنگ من قشنگه میگه تجمع فیه فیه میخوره به این لشکر روم تجمع جمع یعنی جمع کرد جمع یعنی خیلی جمع کرد تجمع متابعه جمع است یعنی به سختی جمع شد تجمع میگن فلان تجمع کردن یعنی به سختی نمیگن جمع شدن جمع شدن خب یعنی جمع شد تجمع یعنی از این ور و اون ور به سختی آمدن کنار هم واقع شد تجمع کردن یعنی همدیگر صدا کردن از این و ورون, ورون برنابرزی کردن اومدن کنار هم وای سدن تجمع پس متابعه جمع است جمع یعنی به سختی جمع کرد بسیار جمع کرد تجمع یعنی به سختی جمع کردن بسیار جمع کردن باب تفکیل مطابعش باب تفعیل آمده تجمع فیه پس تجمع کردن در این لشکر کل و لسن و امت لسن یعنی لغت یعنی لسان لسن لسان یکیه یعنی لغت او... الان فکر مرا فهمید تجمع ابیه کل الاسنن و امته میگه تو این لشکر از هر لهجه و زبانی و هر امتی اومدن جمع شدن تجمع همین دیگه از همه جا اومدن جمع شدن یعنی این لشکر لشکر بین المللی بوده مثلا لشکری نبوده که فقط مثلا عرب زبانان یا نشگری نبوده که فقط مثلا فارس زبانان توش باشه این لشکر از همه جا اومده بودن به کمک هم و توش بودن زبانهای مختلف امتهای مختلف تجمع افیه کل لسنن این کل نیجا میشه هر جمع شده بود در اون هر زبانی و هر طعفی. یعنی از همه زبان ها و همه تایف هاتون حالا مبالغه میکنه میگه فما توفهم الهداسه علت تراجم هداس جمع حادثه مثل طلاب جمع طالب حالا. حادث یعنی متحدث یعنی سخنگو الان میتونید ترجمه کنید فما توفهم الهداسه پس نمی به سخنگویان علت تراجمون یعنی تراجم بایل با توفه ماست تراجم یعنی مترجمین یعنی اونهایی که بیان به قول خودمون واسطه شن و سخن رو از کسی به کسی دیگر بگن درست شد تراجم جمع ترجمانه جمع ترجمه نگیرید تراجم جمع ترجمانه تر ترجمان یعنی مترجم درست شد ترجمان یعنی چی؟ مترجم خب فکر میکنم فهمیدید درست شو؟ میگه جمع شده بودند بسیار در این دشتگر از هر زبان و لغت و هر تایفی پس نمی فهمان به سخنوران مگر مترجمان یعنی فقط مترجمها می میتونستند این وسط کار کنند از این اهل زبان و امت به اون اهل زبان و امت کلامی رو منتقل کند یعنی لشکری بودن که یه ده رومی صحبت میکردن یه ده عربی صحبت میکردن یه ده انگلیسی صحبت میکردن یه ده زبانهای آلمانی و غیره و اینطوری مثلا صحبت میکردن خب وقتی اینا میخواستن با هم همه همه بزنن فقط مترجمه میتونستن اینها رو به هم پیونده دن خودشون امکان حرف زدن با هم نداشته تجمع افیه کل لسنن و امتن فما پس در نتیجه فقط مترجما میتونستن سخنوران را به همدیگه معرفی کنن بفهمانن خب. حالا لشگر رو داره اینطوری میپذه توضیح میده بعد میگه این لشگر به این گندگی را آه تو یه لغمه کردی؟ فل خب ببینید چه فل فلالله وقتون فلالله وقتون زب و بلقیشنا روه فلم یبقه الا سارمون او زبا الله وقتون این اصلا برای تعجب این سیغه بکار میره مثلا میگم الله شاعر چه شاعری عجب شاعری فلله وقتون این زوب لله فبر مقدم وقتون مبتدای معرفت زوب القشن آروه درست شد زوب بود یعنی زوب کرد ناروهو اونهو میخوره به وقت چون این جمله صفت اون وقت زد و بله قشه ناروه سارم یعنی شمشیر سارم یعنی شمشیر از سرمه گرفته شده یعنی قطره چون شمشیر میبره بهش گفتن اسمشو گذاشتن سارم یعنی شمشیر قاطع برنده زبارم یعنی شیر زبارم یعنی شیران خب مردم شجاع رو به چی تشبیه میکنه؟ به شیر اینو میدونید خب مردم شجاع تشبیه میشن به شیر خب زبارمم یعنی شیر زبارم یعنی اسد حالا بیان بگیم میگه فل الله وقتون آن چه زمانی شد کدوم زمانه میگه تعجب میکنه ازش زمان رودرویی لشکر و دوله با این لشکر عجیب و غریبی که توصیف کرد میگه خدایی بود اون زمان زمانی که زوب و بلقشا روح آتش اون زمان هرچه ناخالصی بود رو ذوب کرد تمام ناخالصی ها را ذوب کرد همید للاه وقتون مثلا لله للاه شاعرون خب عجب شاعریه یعنی شاعر خداییه اینجا از وقت منظورون وقتیه که نشگر سیف و دوله و اون تعجب میکنه از اون وقتی که جنگ بپا شد بین سیف و دوله و بین اون یعنی عجب وقتی بود چی وقتی که زوب کرد تمام ناخالصی ها را آتش اون وقت ببینید قدیم فلزات رو مثلا طلا یه مقداریم مس قاطیش بوده این قش داشته نقره یه مقداری مثلا سرب قاطیش بوده روی قاطیش بوده قشت داشته اینا چه کار میریختن توی کوره داغ میکنم آب میکنم زوب که میکردن اون قسمت مثلا مثل طلا ازش جدا میشد طلای خالص به دست میگه می تا زمانی که به قول خودمون جنگ نشده بود معلوم نبود که این لشکر و لشکر سیف و دوله به هم نرسیده بودن لشکر قلابی آه لشکر دنکی شدی معلوم نبود چطوری میشه قشت رو فهمید بندازی تو آتیش این لشکر هم موقعی که به آتش جنگ وارد شد معلوم شد درست شد که چه است یک جنگی اتفاق افتاد که ذوب کرد تمام ناخالصی ها رو آتش این جنگ آتش این وقت پس باقی نموند پس باقی نموند درست شو. مگر چی باقی نموند مگر شمشیر واقعی یا شیر واقعی یعنی یه جنگی شد که فقط و فقط از این جنگ اونی سالم به در اومد که شمشیر واقعی بود و اونی از این جنگ پیروز در اومد که شیر واقعی بود شیر و شمشیر واقعی فقط باقی موند مثل طلای واقعی موند اون قل و قشق ها همه دود شده از بین رفت یعنی یه جنگی اتفاق افتاد که این جنگ فقط کسی از او سر براود که شمشیرش واقعا شمشیر بود و خودش هم واقعا شیر بود این تونست از این جنگ سالم در بیاد الله وقتون زب و بلغش، الغش یعنی تمام ناخالیسی ها زب کرد تمام, علف لام داره. تمام ناخالیسی ها را آتش این وقت فلم یبقه پس باقی نمود الا شمشیر و شیر زباره گفتیم یعنی اصد منظور یعنی شجا این منظور از قش اینجا چیه گفتی؟ یعنی ضعیف هر آدم ضعیف و شدی بود که با قول خودمون پهلوان پنبه های این جنگ همشون و معتل شدن هیچ روش شد بعد تنها شجاعان لشکر بودند که باقی مانده خب فل الله وقتون زب و بلقش یعنی تمام زعفا رو نارو بو. یعنی اون که تو میدونه جنگ اومده بودن اونایی که پهلون پنبار همه رابیم بود فلام یبقه لاصارمون او زبا حالا تقتع مالا یقتعود در او مالا یقتعود در اول قنا و فررمین الفرسان مالا یوسا درمون بشنگه قطع یعنی قطع کرد مثل همون تجمع است قطع یعنی قطع کرد قطع یعنی خیلی قطع کرد ریز کرد تقتی یعنی خورد کردن تقتع مطابعی قطع است قطعته او یعنی ریزش کردم خوردش کردم تقتع یعنی خورد شد ریز شد قطع یعنی برید متاوهش میشه انقطع یعنی بریده شد پس قطع متاوهش میشه چی؟ انقطعه مثل قطعه تلحبله یعنی ریسمانو بریده فنقطع بریده شد اما تقطعه تلحبله یعنی تک تک تک تکش کردم فتقطعه تک تک شد فهمیدید؟ دیده این شبه میگه چی؟ تقطعه یعنی خورد شد مالا لا یقطع هر آنچه چه که قطع نمیکرد نیزهها را القنا و در و ذره ها رو یعنی زرهها ها داره القنا جمع قنات یعنی نیزهها. یعنی نیزهها و ذره ها اون چیزی که نمیتونست اینها رو قد کنه درست تقطه شد تقدر خورد یعنی هر شمشیری که شمشیر نبود هر شجاعی که شجاع نبود و نمیتونست ذره بدرد و نیزه خورد کند خورد شد هرکی نمیتونست تاب بیاره در میدان جنگ و ذره و نیزه دشمن رو در هم بکوبد خودش خورد شده اب و فر رمین الفرسان و فرار کرد از فرسان از سواران یا ابطال یعنی پهلوانان دو و فر رمین الفرسان توی بعضی نسخش داره ابتال یعنی پهلوان نماها و فر رمین الفرسان منلای و سادما اونی که نمیتونست برخورد کنه جنگ کنه. قولو به بفراد. بالا گفت کی باقی موند؟ بالا گفت کی باقی موند؟ فلم یبقى الا موند شمشیر. و زبارم شیر. یعنی هرچی که شمشیر نبود، چوب بود مثلا ارزش شمشیری نداشت، نمیتونست نیزه و زره کنه خورد خمر شود. و هر چی هم که شیر نبود، روباه بود تو میدون جنگ فرار کرد و رفت. آه. تقدت ما لا یقتا اد در قنا خورد و خمیر شد هر آنچه که نمیتوانست توانست بدرد نیزه ها را و زره ها را و فر را من الفرسان و فرار کرد از سواران سواران میدان جنگ من هر کسی که لا یوسادمه نمیتونست بجنگه برخورد بکنه صادمه یوسادمه یعنی جنگ یعنی هر کسی که نمیتونست بجنگه به قول خودمون میدون خالی کرد و مثل روباه از میدان جنگ فرار کرد یعنی اونای که قادر بر جنگیدن نبودن قادر بر مصادمه نبودن خب دیگه مبحثی نداره ساده است پس هرچی که واقعا شمشیر واقعی نبود تو زمان این جنگ که خوردن به هم و نمیتونست در هم به گوبه زره ها و نیزه ها رو خورد و خمیر شده رفت و هر کسی هم که پهلوان نبود و شیر نبود واقعا زبارم نبود و نمیتونست برخورد کنه تو میدون جنگ قایداری و مقاومت کنه اونم پارو گذاشت به بره. حالا میخواد بگه تو این میدون جنگ تو چه جایگاهی داشتی سمیده بشه جایگاه تو چی بود نگاه میگه وقفتت وقفت و ما فالموت شک کن لواقفی وقفت تو ایستادی تو میدون جنگ و ما در حالی که ما فالموت شک کن لواقف ما یعنی فی موته یعنی فی موت و حالان که در مرگ تو شکی نبود برای کسی که ایستاده بود یعنی و ما فی موته فی موته یعنی فی موته شک کن لباقه یعنی شک نبود برای کسی که اونجا وایستاده که اینجا که این وایستاده حتما کشته خواهد شد منظور یعنی چی؟ یعنی تو تو میدون جنگ درست رفته بودی وسط میدون جنگ تو اون جایی که هر کسی میگفتن اینجا باشه دیگه بر نمیترده تو بخبوه جنگ تو دل جنگ و ما فیل الموت آ و ما فی موتهی شک کنبه واقفه یعنی اصلا شک نبود برای کسی که اونجا وایسته در مردش تو جای وایستدی در حالی که شک نبود برای کسی که اونجا وایسته در مردش یعنی و ما شک کنبه واقفن این موتهی یک شک نبود برای کسی که وایستده اونجا در مردش شهنکه فی جفن ردار جفن یعنی پلک ارودا یعنی الحلاک یعنی الموت تو گویا زیر پلک مرگ بودی این از این بالتر یعنی چش شباکانه تو رو میبینی خوب تو درست در زیر میگم ها زیر چشم فلان بودی یعنی درست مقابل دیدش بودی که اندکه انگار تو بی جفن ردان در چشم مرگ بودی در جلوی چشم ما اما وحو ونا و حالان که مرگ خواب بود تو رو ندید آه. میگه تو در میدان جنگ درست در جای بود وایستده بودی که هر کسی فکرش رو میکرد میگه حتما کارش تمومه دیگه نمیتونه این کسی که اینجا این همه محاصره کردند از چاپ و راز خلان قیله این کارش تمومه در مرگ این کسی که اینجا وایستده شکلیست مو یا تو تو چشم مرگ بودی جلوی چشمش بودی اما وحوان و وحالان که مرگ نائم بود خواب بود تو رو ندید تو زنده مودی یعنی الهلاک وقفته یعنی وقفته بیساحت الهربه وایسادی تو در میدون جنگ در حالی که شک نبود کسی که اونجا وایساده میمیره یعنی در جای سختی بود چون شدت جنگ و شدت موقف بود کسرت برخورد بود جوری که تو دیگه گفتن اینجا کسی واسه نمید زنده نمید خط مقدم بودی به قول خود او یا تو در پل که مرگ واقع شده بودی و حالان که او یعنی اون مرگ از تو قافل بود و تو رو نمیدید درست شد و از تو قافل بود به واسط اینکه خواب بود و تو سالم بود یعنی جایی بودی که مرگ صد در درصد بود خدا خواست تو سالم موندی مرگ از تو غافل شد و الا هر کس دیگری اونجا بود کشته می‌شد هیچ راه چونی نبود سیکو دلارو هم گفت که تو در میدان جنگ، در بهبوه میدان جنگ بودی، جوری که هر کسی اونجا بود، کشته می‌شد. تو در جلوی چشم مرگ بودی، حلاکت بودی، ولی خب مرگ از تو غافل بود و خواب بود. و تو سالم موندی، خدا را شکر. تا اینجا. موفق و باشید ان الله. همه تونو به خداوند سبحان میسکرم تا انشالله هفته آینده همین ساعت در خدمت شما موفق و معید و السلام علیکم و رحمت الله و بره.